فصل سوم حاج محمد رو دکه خانه‌اش رو حazir چولان نمخردی نشسته بود و قلیان میکشید و به ماه پت و پهنی که روبرویش کنار افق چسبیده بود نگاه میکرد. روز خوشی را گذرانده بود. فروش دکانش خوب بود. پولهایش را برده بود، بوشهر گذاشته بود، دو بانکه شاهی و برگشته بود و حالا داشت تو سرش آنها را با هم جمع میزد. شام را چند تا گواف داغ با روتپ پرشت از نقلهای خودش خورده بود و حالا داشت تنباکوی اعلای برازجونی را دود میکرد که دید ناگهان لرزشی به اندام افتاد و در دم سر و کله محمد از بالای نردبان پیدا شد. فوری دلش تو ریخت و تو سرش گذشت چه شده؟ شهر و بچه ها شده؟ محمد آدمی نیست که بی خودی بیاد اینجا بعد دهنش را از نی برداشت و از بالای سر قلیان به محمد نگاه کرد و سلام او را جواب گفت و همانطور که به چهره او نگاه می کرد نگاهش از او می پرسید چه خبر شده که آن وقت شب به دیدن او آمده همان لبخنده همیشگی محمد تو صورتش خط انداخته بود. دل حاجی شور میزد. حاج محمد دایی او بود و محمد دامادش هم بود. محمد خیلی کم به خانه دایش میرفت. اما حاج محمد هفته یکی دو بار چه محمد خانه بود و چه نبود به دخترش و نوههاش سر میزد. حالا از دیدن محمد که ناگهانی سر شب به دیدارش آمده بود هو کرده بود. خانه آنها به هم نزدیک بود همه ی خانه های ده به هم نزدیک بود لوکه چهار متر تا کف زمین فاصله داشت رو لوکه نم زردی نشسته بود و حسیرهای چولان و پیشهای نخل که روز زیر تابش خورشید مکیده شده بودند حالا از نم شاداب و آبستن بودند از سر شب که ریزش نم شروع شده بود غبار چرکینان رو همه چیز دیده میشد. هواداش خنک میشد و گرد مه نرم و آرام ذرات گرما را مک میزد. حاج محمد دامادش را خیلی خوب میشناخت. او را بزرگ کرده بود. چیزی که بود، حتی انگام خشم هم صورتک خنده از رو چهره محمد برداشته نمیشد. این صورتک خنده با او زاییده شده بود. و حاج محمد همیشان را دیده بود. برای همین هم بود که آدم هیچ وقت نمی توانست به محمد، خوشحال است یا نیست. اما محمد وقتی که یک چیزیش بود، این خنده تلخ و خاکستری می شد و رنگ می گرفت و مزه میداد و بو میداد. بوی ترشیده زندهایی که او را به صورت کفتار از روی لاش مرده برخاستهای در می آفرد. چشمانش از خنده میافتاد و گوشه های لبش پس میرفت و خطهای خنده مردهی چهرش را چاک میزد. حالا می خندید همان خنده خودش هیچکس مثل زن شهرو رنگ های گوناگون این خنده را نمی شناخت و حاجی هم از زمان بچگی محمد این دگرگونی را در صورت می دید و حالا هم از همان چهره ها داشت که حاجی نتوانست بفهمد محمد چش هست خندش را دید که چگونه مسخ شده راست نشست و منتظر بود محمد حرف بزند محمد آمد روبروی حاجی رو حسیر نشست نگاه حاجی از او میپرسید و چشمان خاموش و او به صورت داییش چفت شده بود و حرفش زیر زبانش جوش میخورد و میخواست همه را یک هو بیرون بریزد و نگرانی داییش پکرش کرده بود صدای او او چند تا سکه به پر به پروپاچه هم پریده بودند زیر لکه بلند بود و محمد می دانست که یکی از آنها شیرو است. حاجی من فکرامو کردم که چه باید بکنم اینا پولای من را خوردن و حالا دیگه یقین میدونم دونم که یه پهناباد هم به من پس نمیدن. باید چارتاشونو بکشم کریم حاج همزه و شیخه با آقا علی و محمد گند رجب همین این اولش و این آخرش دل حاج محمد ریختو و خون تو سر و کلش پرید میدانست که محمد به این کار دست خواهد زد به اخلاق یک دندش خوب آشنا بود اما چطور میشد چهار نفر را زد و گیر نیفتاد کم و بیش از درد دل محمد خبر داشت محمد خیلی حوصله به خرش داده بود یک سال بود برای پولش این در آن در می دوید. خودش دیگر پیر شده بود مدت زمانی بود که زندگی آرامی داشت از حرف محمد لرز به تنش افتاد و دهنش خشک شد و مزه تنباکوی برازجونی تو دهنش مرد خوب میفهمید که همین محمد که یک روز نماز و روزش ترک نشده اگر پاش بیفتد مثل آب خوردن آدم میکشد. دلش برای دخترش و نوههاش می‌سوخت یقین داشت این کار برای دامادش عاقبت خوشی ندارد حاجی سرش را زیر انداخته بود و به کوزه چرکین قلیان که آب بیرونش تراویده بود نگاه می کرد. سپس سرش را از روی کوزه قلیان برداشت و باز به صورت محمد انداخت گویی او را تازه دیده بود مثل اینکه که او را به جان می آورد. رنگ صورت محمد عوض شده بود رنگ پوست انار آفتاب خورده خشکیده را داشت خنده محمد تلختر و بوی ناکتر شده بود بوی نخلستان سوخته و خون زیر آفتاب مرداد خشکیده میداد خیلی دلش میخواست معجزه‌ای میشد و محمد از این خیال منصرف میشد بعد گفت خالو، این فکری که تو سرت اومده من نمیدونم تو خودت بهتر میدونی اما آدم خداشناس و بادیانت نباید از این کارها بکنه خالو درسته اما آدم خداشناس باید مثل شیخ ابو تراب که جانشین امامه مثل دزد سر سرگردنه بندگون خدا را روز روشن لخت کنه، و دارو ندارشون ازشون بگیره بعدم گردن کلوفتی بکنه و هیچ حسابی هم تو کارش نباشه مگه خدا تو قرآن نگفته باید دست دز را برید محمد از جادر رفته بود و داد میزد خالو چطور حساب و کتاب نیست؟ پس اون دنیا چه خبره؟ ولشون کن برن جواب خدا را بدن. روز پنجه سال که آفته و میاد پایین و رو فرق سرشون میتابه، آن روز حساب تو باشون صاف کن. حاجی دیگر قلیان نمی کشید و نی را رو زمین گذاشته بود و آرام حرف میزد. خالو، من روز قیومت سرم نمیشه، اون جوری دلم خونک نمیشه. من چهار تا استقاره برای چهار تاشون زدم. نه تنها همش خوب اومده، بلکه ترکشونم بد اومده. اگه باورت نمیشه برو از سیدالی پیش نماز بپرس. او برام استخاره با قرآن زد نه با تسبیح تو به سیدنی گفتی که استخاره ها برای چه کاریه نه به سید نگفتم اما تو دلم به خدای خودم گفتم گذشته از این مگه من دیوونم که پیش پیش به کسی بگم به تو هم که میگم جایی پدرم رو داری و هرچی چی باشه دخترت زنم و اگه منو بگیرن باید تو زرتو ربطشون کنی برای خداوضی و حلال بودی هم که شده باید پیش تو می اومدم. حالا اومدم حلال بودی به طلبم. پناه بر خدا اما گمون می تو بندر به این شلوغی بتونی چهار نفر را بزنی و گیر نیفتی هیچ فکر عاقبت این کار را کردی خالو من تو فکر گیر افتادن یا نیفتادنش نیستم البته خاص خداست هرچی خدا خاصه میشه. بعد عخم کرد و صدایش را بلندتر کرد و گفت خالو معلوم میشه تو اونجوری که باید از درد دل من خبر نداری تو نمیدونی اینا چه به سر من آوردن؟ من دیگه آبرو برام تو بندر نمونده. نه. خوب نمیدونم. همین میدونم که پولی داشتی و از دستت درآوردن. آوردن. چه بوده، چه جوری شده، کیا این کارو کردن خوب نمیدونم. خالو، تمام اهل بوشهر میدونن. اما تو که بدر زن و خالوی منی نمیدونی؟ از کجا بدونم؟ من که سرم پیشگار خودمه. تو هم که باید بگی چیزی نگفتی. هرچی هم میدونم از بر و ها و کم کمکمکی هم از شهر رو به گوشم خورده. الان همش بهت میگم تا بدونی چه سوراخی تو این دل منه پارسال توبه کردم که دیگه پیش فرنگی کار نکنم وقتی از خونه رابرت صاحب در اومدم تو تومن پول نقره چرخی داشتم که دسترنج 20 سال جون کندنم بود برای فرنگی آشپزی کردم آهنگری کردم سکشوری کردم و بلا نسبت شاشوگویشان را شستم تا این چند تا قرون گرد کردم و این چند تا قرون دار و ندارم بود از خونه رابرت صاحب که در اومدم رفتم پیش امام بوشهر گفتم میخوام پولمو حلال کنم خدا خیرش بده چه چادممه با خداییه دو هزار تومنم گرفت و 1700 و تو از پول خودش به انداد همش سیصد تومنش وراشت من راضی بودم از شیر مادرم حالاترش باشه بعد که میدونی به کربلا مشرف شدم وقتی برگشتم برام هزار و ت ما مونده بود که با سیصد تومنش همین دوک جافروشی تو بنده رو باز کردم و چندتا بازم خریدم برا زن و بچه هام. این خدا شناسایی بوشهری بو بردن که یه هزار تومی پول و تو دست منه. همین محمد گند رجب اومد زیر پایم نشست که بیا پولتو بده معامله من گفتم خوب چه بی داره که سر و سامانی به زندگیمون بدیم محمد گند رجب رفت و این کریم حاج همزر رو برداشت وورد. قرار شد کریم یه خونه ای که کنار دریاداش پیشم گرو بذار و هزار تومن بگیره یه ساله رفتیم محضر همین شیخ ابوترابو به گردن خورد پولا رو جلنگش مردیم دادیم به کریم و خونه رو به حساب خودمون گرو برداشتیم و دلالی محمد گندرجب را هم تا دینار آخر دادیم حالا نگو که این خونه غیر از پیش ما دو جای دیگه هم گرو بوده اصلا خونه دیگه مال کریم نبوده و این شیخ ابو که خودش دستن در کار بوده به ما چیزی نگفته و کاغذ دروغکی ساخته من دو سه ماه بعد خبر شدم که خونه جای دیگه هم گروه. رفتم پیش کشل و وکیلش کردم که کارم درست کنه نگو که او هم با اونا همدست شده بود چه دردسر بدم یک سال روزگار هی hey, رفتم هی hey, اومدم هی hey, رفتم هی hey, اومدم بر کاری کردم حاضر نشودن یه پاپاسی بهم بدن تو نمیدونی خالو من چقدر عزوجس کردم چقدر التماس کردم هیچ فایده نکرد کار به جایی رسید که گازر شدم هزار تومن رو به 300 تومن صلح کنم نشد و گازر شدم اصل و فر رو روزی دو قرون به من بدن تو 300 تومن تموم بشه نشد تا لام 60 تومن باق علی دادم و کارم درست نشده تازه میگه برو 40 تومن دیگه هم بیار تا کارتو تو درست کنم اگه میدونستم میکرد میرفتم و این 40 تومن هم بهش میدادم اما میدونم که همشون دستم انداختن و هیچ فایده نداره تو که خالو خودت بهتر میدونی ما تنگ را مردم ساده دلی هستیم اما از وقتی که ومیدم همشون برای خوردن پول من با هم دست به یکی شدن مثل اینه که نفت رون رو رو ریختن و آتش هم زدن مثل اینه که بچه هم و سر بریدن صورت محمد رنگ نیل گرفته بود و خنده مردش تهی صورتش پیج و تاب میخورد ششمان درشتش تنگ و درد خورده شده بود لبهایش میلرزید و همینطور که حرف میزد بیان که خودش بخواهد تکه ای از حسیرهای نمو که کف لکه را کنده بود و تو چنگش پاره پاره کرده بود. حاج محمد دلش به درد آمده بود. دریایی از غم به دلش راه یافته بود. هزار تومان خیلی پول بود. چرا محمد نافهمی کرده بود و پول بی زبان را دست آدم زباندار داده بود؟ چرا با او که ریشش سفید شده بود و سرد و گرم جهان را چشیده بود مشورت نکرده بود و حالا میخواست یک اشتباه را با اشتباه بزرگتری تلافی کند عاقبت کار را خیلی تاریک میدید نیرا برداشت و باز پکهای پی در پی قایم به قلیان زد و نمیدانست چگونه محمد را از تصمیمش باز دارد؟ محمد براشفته گفت خالو برای پولش نیست. پول مثل چرک کف دست میمونه. یه ساعت میاد، یه ساعت دیگه میره. اینا من منو تو بندر بردن. دیگه نمیتونم کاسبی کنم. حتی جاشوای جبری و ظلم مسخرم میکنن. هی میگن کریم پول داد. اگه میخوای جای پولات رو بد نشون بدیم برو بردار. تو توغه بافور کریمه همش کرده تو سولاخ بافور. نیروز رفتم پیش آقا علی میگم آقا کار ما درست شد؟ میگه چه ویلی، چه پشمی؟ چه کشکی. کریم آه در بساد نداره. میگم ده هزار تو من جنس بدزازی تو دو کنشخواابیده. میگه خونه قاضیم برو گردوه چش به ما میرسه. بعد میگه اگه چلتمن دیگه بیاری یه کاری برات میکنم. میگم آقا تاالاش حالا تو من پول جرننگگه تو تو ریختم که کارم درست کنی. همش امروزو فردا میکنی بعد میگه برو پیش شیخ بوداراب که قباله برات جور کرده پیش من چرا میای؟ همش میگه برو پیش او او میگه برو پیش او. حالا بزار یه چلتانی به بد بدم که خودت هست کنی. دو سه روز پیش گفتم. یه سری برم پیش شیخ راب یه اتموما حجتی بهش بکنم رفتم دیدم تو مجلسی شیخ گوش تا گوش آدم نشسته به خدا رو نیومد حرف بزنم سلام کردم یه گوشه دم در نشستم گفتم هیچ نمیگم حالا که اومدم یه دقیه میشنم بعد پا میشم میرم از اون همه آدم که اونجا بودن شن کردم چیزی راجب کارم بگم خیلی یا بودن از اونایی که من میشناختم خود شیخ بود محمد گند رجب بود و آقا علی کچل خیلی یای دیگه هم بودن که من اونا رو میشناختم اما به کار من مربوط نبودن تاجر بود پیش نماز بود نوکر باب بود خیلی‌ها بودن تا دم در نشستم شیخ ابوتراب صداش انداخت رو داد زد زار محمد باز هم اینجا پیدا شد مگه نگفتم دیگه این طرفا سفید نشو بابا تو چقدر دستی میگیری که اینجا رو ول کنی من وقتی دیدم او اینجوری حرف میزنه خون تو سرم دوید گفتم آقا پولم میخوام تو پول من رو گرفتی دادی به کریم هاجمزه حالا خودت هم ازش بگیر پولم بهم پس بده شیخ ابوتراب خشمش گرفت و باز داد زد مرده که دبنگ مگه حرف لید نمیشه پولی داشتی دادی نزول حالا صاحب معدی مفلس نومه تموم کرده قال رسول الله المفلس فی امونلا نداره بده حالا میگه من چه کار کنم مگه حق تحریری بیشتر از تو نگرفتم من چه کار کنم که پولتون نداره بده خیلی غریبه ها هرچی میگی نره میگه بدوشش برو آفتابه رو پشت بون خونش جمع کن عوض طلبت منم صودایی شدم و گفتم آقا حرف دهنت بفهم برای چی به من میگی مرتکه دبنگ برو خدا رو شک کن که جای پیغمبر تکیزدی میخوام بفهمم پیغمبر اسلام هم وقتی و نهی میکرد به مردم بد و بیراه میگفت شیخ بوتراب آتشی شد و داد زد چه گهایی زیادتر از دهنش میخوره پاشو برو گورت گم کن هزار تا کار داریم اگه دیگه این طرفا پیداد بشه میدم بندازنت زیر شلاق تا کمرت له کنن اون وقت محمد گندرجب یه شعری خون که مردم روسا همهشون خر و احمقن من شعرش یاد نگرفتم بعد همشون زدن زیر خنده به خدا اگه تو ونگ با هم بود همشونو میزدم پشت چشم مردم مثل پنبه شاشو شدم دیگه نمیتونم سرمو پیش اهل بوشهر بلند کنم این شد زندگی تو گمون میکنی غیر از گلوله با چیز دیگه میتونم آبرومو بخرم حاج محمد از خون نمی ترسید. پیر شده بود اما تنگ سیر بود و او هم زیر بار زور نمی رفت. اگر خودش هم به سن و سال محمد بود همین کار را می کرد که محمد می خواست بکند. کشت و کشتار چیزی نبود که تو تنگستان کسی ازش بترسد. گاه می شد برای چند دانه خورما دستها به تفنگ می رفت. اما دلش محمد از راه دیگری به غیر از کشت و به پولش برسد سرانجام کار را بد می دید و برای شهر و نوهاش درش می سخت. دخترش هنوز خیلی جوان بود و زود بود که بیوه بشود. یقین داشت محمد از چنگ تفنچی های حکومتی جان سالم به در نمی برد. آینده بدی برای محمد می دید. چشمانش رو پایین انداخته بود فکر میکرد و غلیان میکشید سپس سرش رو بلند کرد و گفت زایر من حرفی ندارم تو کارتم نه نمیارم حالا که با خدا مشورت کردی من بنده گناهکار چه میتونم بگم هر کوری بهتر است تا روشن پیش پای خودش را میبینه درسته که پای آبرود تو کاره اما هیچ فکر زن و بچهات کردی؟ تو که تنها نیستی زن و بچه داری به خاطر اونا هم که باشه، باعث احتیاط کنی. پولت رفته، جونت هم میره. محمد تندی جواب داد: به درک تو زندگی هیچ چیز نیست که به قد شرف و حیثیت آدم برابر باشه، حتی جون آدم، حتی زن و بچه آدم. درسته که چشمشون به دست ما و ما باید به فکرشون باشم و زیر پر و بال خودمون بزرگشون بکنیم، اما نه با بی‌آبرویی. این خوبه که فردا که بچههامون بزرگ شدن، مردم بهشون بگن باباتون نامرد بود و زیر بار زور رفت. این خوبه که بهشون بگن چندتا پاچه برمالیده بندری دار و بر وندری و و بالا کشیدن و مزقرش کردن و اونام مثل بیو زیر بار ظلم رفت و رفت زیر چادر ننت کر شد این خوبه یا خوبه بهشون بگن باباتون رفت حقش بگیره کشتنش خالو اگه بخوایی بدونی من این کار رو برای خاطر بچه بچه‌هام میکنم که دیگه کسی پیداشه به اونا ظلم کنه اگه یه دفعه کسی خواست بهشون زور بگو و حقشون با کنه اونام بدونن که تکلیفشون چیه خالو من حق زنم تا دینار آخر بهش میدم کابی نشم میدم هرچیم که دارم مال شهرو بچاشه من که غیر از اونا کسی ندارم اما اگه شهرو بعد از من خواست شوهر بکنه دارایی من نباید خرج شوهرش بکنه بعد هرچی مال بچهاست بده به تو تا خرج خودشون کنی منم اینا رو به شهرو میگم شهروی پارچه جواهره یه کوپه نوره این حرفام که میزنم هیچ لازم نیست اما خوب تو دنیا همه چی ممکن اتفاق بیفته هیچ که نمیدونه یه دقیقه دیگه چه میشه دنیاست شاید شهرو بعد از من دلش خواست شوار کنه. کاریه که خدا و رسولش گفته خلاف شرک نیست. شاید منو گرفتن دار زدن. حاج محمد دلش می لرسید. از آخر کار بیمناک بود. حالا دیگر می دانست که حتماً محمد کار خودش را می کند و حرف و نصیحت فایده ندارد. تو سرش می که محمد را در بوشهر توفنگجی های گرفته و کشتند. دیگر محمد برایش زنده نبود. مثل اینکه تو خواب او را میدید یا روح او بود که جلوش نشسته بود نکه بینیش سوخت و ورقه که گرمی رو نینی چشمهایش را گرفت شهرو خبرداره با نفس بریده گریه گرفته پرسید کم و بیش چیزایی می دونه من با حرف میزنم. خیلی کارها هست که باید شهرو برام بکنه شهرو زنه منه باید همه چی بدونه یه خردکاری هم هست که کسی به غیر از نمی نمیتونه بکنه. خالو، گریه نداره. معلوم میشه خیلی دل نازک شدی. خواهشی که ازت دارم چیزی به کسی نگی. به شهرو هم چیزی نگو. همه را خودم هم بهش میگم. اگه یک کلم از این حرفا بیرون نشت کنه حساب من پاکه. گرگ دهنالو دو و یوسف ندریده میشم. دیگر چیزی گفته نشد. هر دو فکر کردند. عشق حاج محمد تو چشمانش خشکی. صدای زوزه سگی که زخم برداشته بود و وقش آمده بود بلند بود. ماه بالا آمده بود و غبار نم رو چهرش خوابیده بود. سر غلیان حاجی خاموش شده بود و دیگر دلش نمی‌خواست قلیان بکشد. تمام حواسش پیش کار محمد بود. محمد راحت شده بود و حالا لذت انتقامی را که تو زبانش راه یافته بود مزه مزه می کرد. بعد پا شد و گفت خالو ما رفتیم دیدار به قیومت اگه دیگر ما رو ندیدی حلالمون کن هر بدی هر خوبی از ما دیدی حلال کن از دختر تو بچه‌هاش نگهداری کن دستکم دلم خوشه که چند تا قرون براشون نهادم که سربار بار زندگیت نشن تنها سایت رو سرشون باشه خودش بسه. خدا سایت رو کم نکنه حاج محمد برخاست و او را بغل گرفت و صورتش را ماچ کرد هنوز چهرش اشکین بود از چهره محمد به هم کشیده زمخت و خوشک بود برو که خدا پشت و پناهت باشه از شهرو و چاد خیالت راحت باشه زیر سایه امیرالمؤمنین المؤمنین برو که حلال به زنده و تندرستی